بخش روزهای یکشنبه شنبه های شهر یا اطراف دست دسته به کلیسا می دعایی می نصر و نیازشان را میدادند و در حیات باسفا و پر از گل و درخت کلیسا ناهار میخوردند، و عصر بر روبناگ ساختمان آجر قرمز رنگی بود که دو ردیف پنجره دولاگه داشت و در وسط درو جلوی در ورودی دو ستون بسیار بلند به سبک باروک تا سقف ادامه یافته بود و بالای آن لانه ساخته بودند یک ستون یاد بود در وسط حیات از زمین برآمده بود و مجسمه‌ای از قدیس پیری بر بالایان قرار داشت که دست به دعا برداشته بود و بعد باخچه های کوچک از دو طرف ساختمان را دور میزد. ساعت سردر کلیسا سالها پیش از کار افتاده بود و در چوبی بزرگ صحن با صدای نالمانندی باز و بسته می شود. از آن همه خادم و نگهبان و سرایدار تنها یک زن کوتاه قد مانده بود که همه کارهای کلیسا و حتی خانه گالوست میرزایان را انجام می داد. روزهای یکشنبه شنبه علاوه زائران مؤمن دست فروشها هم بساتشان را اطراف کلیسا کوچه ارمنستان و محله گازوران پهن می کردند. و تمامیان محله خلوت را به بازار مکاری مبدل می میساختند محله پر میشد از روزنامه فروشها لبییها باغل سبزی فروشها لباس فروشها صابون سازهای دهات اطراف اسباب بازی فروشهای دقل بازی که سر بچه ها شیره میمالیدند سلمانیهای های که چای و دارچین هم میدادند اشم فروش هایی که میخواستند خرج یک سالشان را از این غیر مسلمان ها در بیاورند فایتونچی ها هم سر کوچه منتظر مسافر چرت می زدند غیر از روزهای یک شنبه گاه کسی می مرد یا دختر و پسر جوانی می خواستند عروسی کنند به هر حال باز محل رونقی می گرفت گلوست میرزایان، فایتون میفرستاد خانه کشیش، دستور میداد، سورمه برای کشیش غذای نرم و پیر ای بپزد. آن روز خودش سر سرکار نمیرفت و از و سرن هم میخواست که بماند و به مهمانان چای و قهوه بدهد. اصر چون این روزی که پنج شنبه بود و هوا گرم بود، موسیو سرن به کارگاه رفت که با آیدین، قهرهی بنوشد و باش حرف بزند از مدم یوگینه شنیده بود که سورمه مرتب وقتش را آنجا می گذراند و حالا می خواست بداند آیدین آدمی است؟ نظرش چیست و برای آینده چه فکری دارد آیدین بهش گفت که قصد دارد تا چند روز دیگر از اینجا برود و این موضوع را تا به حال با کسی در میان نگذاشته، اما دیگر تحمل ماندن ندارد. مسیو جا خورد. بروی؟ کجا؟ آیدین گفت تهران. مسیو گفت برای چی؟ آیدین گفت درس بخونم، زندگی کنم، مثل دیگران. مسیو سرن گفت با این تقیب و گریز، با این وضعیت بد، گمان نمی کنم فکر عاقلانه ای باشد. ایدین گفت، شاید، اما چهار سال از عمرم توی کارخانه و کارگاه و زیر زمین تلف شد. انگار قیچیش کردند و ریختند دور. میخواهم بروم ببینم چه کار میتوانم بکنم. مسیح سرن، من خیلی لطمه دیدم. مدارکم سوخته، شعرها و نوشته هم سوخته، انگار گذشتم را از من بریدند، احساس میکنم که کم حوصله شدم و بالاخره که باید بروم. مسیح سورن ناراحت و نگران مینمود و تمام این حالات در رفتار و چهره دیده میشد. میخها را روی میز میریخت و باز جمعشان میکرد. در جعبه را میبست و باز میخها را میریخت. قاب عکس ها را روی هم میچید و باز میرفت سراغ چکش. عصبی مینمود گفت من به شما حق می دهم، با اینکه وضعیت بدتری از شما داشتهام زندگی من هم سوخت، زنم مرد، بچه هم دانیال که یک ساله بود مرد، جنگ ما را از هم پاشید، از آن همه شادی و زندگی تنها سورمه برایم مانده که او هم وضع بهتری از من ندارد، شاید به شما نگفته، اما ازدواج بی سرانجام و بدی داشت، شوهرش سه ماه بعد از عروسی مرد، بعد هم که زمان گذشت و سورمه زوق و سلیقش را از دست داد بارها فسرهای فامیل ازش خاص کاری کردند. اما زیر بار نرفت ما هم که نمیتوانستیم مجبورش کنیم خب ماند حالا وسواسی شده و به مردها با تردید نگاه میکند نمیتوانم بفرستمش ایروان نه دلم میخواهد اینجا بماند اما همه چیز را پشت گوش انداختم و روزها میگذرد. این زندگی ماست، میبینی که وضعیتی بهتر از تو نداریم، با تقدیر هم سر جنگ نداریم آیدین گفت، بله، راست میگوید. شما هم سوخته اید، اما آخر چه. من تا آخر عمرم باید اینجا توی این زیر زمین بدون نور بمانم و قاب بسازم. بی آنکه بدانم پولش به چه دردم میخورد. بی آنکه بتوانم از زندگی اجتماعی استفاده بکنم. پس من برای چه به دنیا آمدم؟ مسیوسرن گفت پس چرا یک بار این تصمیم را گرفته ای؟ گفت من خیلی فکر کردم. فرصت زیادی داشتم که فکر کنم و حالا، مسیر سرن گفت، شما جوانید، توی مملکت خودتان زندگی می کنید، کرده و فهمیده هستید، اما چرا باید اینجور بشود؟ آیدین گفت، نیست که پدرم در صفرم گذاشته. و بعد حرف دلشان یکی شد، انگار هر دو یک نفر بودند که می نالیدن. هر دو خراب و خسته و قمگین. وقتی موسی سرن میرفت در آخرین لحظه گفت، باز هم فکر کن، شاید راه های دیگری هم باشد. آخرهای شب، وقتی همه سر و صداها خابید، سورم از پلده ها پایین آمد، در زد و داخل شد. آن روز از بس گرفتار بود، نتوانسته بود به آیدین سر بزند و حالا بیم زده و آشفته مینمود روزنامه را روی میز گذاشت و به اتاقک رفت. روی تخت نشست و انگار که سقوط هواپیمایی را میبیند به آیدین چشم دوخت. لحظات زیادی در سکوت طی شد. آیدین گفت به گمانم خیلی خسته شده ای. سرمه گفت. میخواهی بروی؟ آیدین گفت پدرت گفت سورمه گفت آره آیدین گفت آره سورمه گفت پس چرا به من نگفته بودی؟ آیدین گفت کاش به سرن هم نگفته بودم سورمه گفت همین؟ آیدین ساکت ماند سورمه را تا آن روز آنقدر پریشان ندیده بود سورمه گفت پس من چه کنم؟ آیدین گفت، من به درد تو نمیخورم سورمه، باور کن. سورمه گفت، تو چرا اینجوری شده ای؟ آیدین گفت، من از خودم هم خسته شدم، قوسلم را از دست دادم، دلم دارد میپوسد. سورمه گفت، پس من چی؟ آیدین گفت، نمیدانم. سورمه گفت، آیدین. آیدین نگاهش کرد. سورم بیحرف مانده بود. لحظاتی چشم در چشم همدیگر را نگاه کردهاند. بعد سرمه در حالی که می لرزید و به زحمت خودش را کنترل می کرد گفت پس این همه حرف قشنگ و به زمین خیره شد. آیدین گفت: همه این حرفها احساس واقعییم بود. هنوز هم هست اما پیش از آنکه گرفتار تو بشوم باید بروم. باید شوق را توی دلم بکشم باید عشق را توی قلبم سر ببرم های سورمه روی گونهش سر میخورد و او با آرامشی خاص حرف میزد. دوست داشتن تو کار ساده ای نیست هاگن گفت باور کن سورمه من به درد تو نمی‌خورم سورمه گفت این حرف را نزن هاگن گفت من آدم سنگدلی نیستم سورمه اینجا هر روز هزار روز بر من میگذرد. اگر به خاطر دل خودم بود یا به خاطر دوست داشتنت می‌ماندم ولی من میخوام شاعر هم باشم باید این شوق را در خودم بیدار کنم من از همه چیز وا ماندم سورمه گفت حداقل بگذار من هم همراحت بیایم آیدین گفت کجا سورمه گفت هر جا که می روی. آیدین گفت این عاقلانه نیست در شهری که من هیچ آشنایی ندارم چطور ممکن است تو را هم سرگردان کنم سورمه گفت ای بی‌انصاف و بغزش ترکید و حخ کنان از آنجا رفت آن شب ایدین خواب دید که مسیح شده است با تاج خاری بر سر و صلیبی بر دوش او را به بیابانی میبردند که مسلوب کنند کسی شلاغش میزد و می گفت تون تر تون تر و او نمی توانست آن صلیب سنگین را حمل کند پاهاش نداشت و انگار قلبش از تپیدن ایستاده بود آن دورها زنی که شکل بود برای او مرسیه می و می گریست و باد زوزه میکشید. روز بعد وقتی روزنامه را میخواند اصلا یاد خواب دیشبش نبود ناهارش را خورده بود و داشت روزنامه را ورق میزد. در صفحه سوم روزنامه اطلاعات پنج شنبه شانزده شهری بر ما به خط دروش نوشته شده بود زنی به نام آیدا در آبادان خود را به آتش کشید زیر تیتر نیز نوشته بودند این زن جوان در برابر چشمای گریان و حیرت زده پسرش در نیمه شب یک شنبه خود را با نفت آتش زد بانقعد سوخت تا جان داد هیچ کس نبود که به فریاد او برسد و ماموران انتظامی هنگامی که